شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح یا کار؟ نه من در ایران زندگی می کنم برای تفریح به ایران نیامدم کجا کار می کنید؟ در سفارت لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار می کنم. مترجم و گوینده رادیو هستم. پس احتمالاً گوینده رادیو عربی هستید. بله. در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد. بیش از سی زبان. واقعاً؟ یعنی برای همه این زبانها برنامه رادیویی پخش میشود؟ بله. در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برونمرزی وجود دارد آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ بله در برونمرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند آیا برنامه های برونمرزی مورد علاقه مخاطبان است؟ بله رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نامه ها و ایمیل زیادی را از مخاطبان دریافت میکنند.